Thank you. هشتا احمای، هیت اشعای و هشتای اشم با درود به همه شما دانشجویان و دانش گرامی نخست عدمین گرامی به من یک آگاهی بدم که آیا آوای من در تالار نمیشه رتفاً یک ماند همشه شمارهی برای من بزنید بعد سپاس کذارم من ادامه میدم یا تا احورم میخونم براتون یکی دو بند رسر آغاز گاطارم میخونم تا دوستان دیگر هم فرابرسن یا تا هو وریو اتارثوش اشاچی دچاو ونگوش دزداو من اینگو شاو هنگه اوش مزدای شترم چا خهورایی هاییم دریگو بیو ددت واسدارم یانی منو یانی وچو یانی شیعوتنم اشو نو زرتوش براو آمیشال سپندهاو گاه تاو گیور واو به گاتاو آشانیش احیا یا صاو Mae je jużz ma z dał porwim z spętach jał, aszał wy speęń sięałótna. با خوشنودی او را و با اندیشه و گفتار و کردار نیک و با درود به دوان و فرور هشوزه تشت سپنتمان بزرگ به عشور و منطره و با درود به همه مردان و زنان نیک و کارسای دنیا و با درود به همه شما هم میهنان، هم فرهنگیان، هم زبانان، دوستاران دانشویان و همه کسانی که چه اکنون در این تالار در این جنجی گردان اومدید و چه کسانی که از راه رادیو زرتشتیان و از راه شبکه جهانی به این ها گوش میدید، درود میگم به همتون، خوش اومدید. امروز روز اردیبهشت است، روز آشوب هستاست. از ماه مه و سال سهزار و هفصد و یا 18 اکتوبر دوزار دوازده ترسایدستان در بودم که امروز از کجا آغاز کنیم و به کدام سو بریم ام به این نچه حسیدم که در پایان هفته گذشته در بخش پرسش پاسخ که فیکیت دوستان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 سطحی به نظر بیاد که اینا با هم گوناگون هستند یا چیزهای مختلفی هستند ولی وقتی که به جرخاش بریم به عمقش بریم و درونش رو ببینیم میبینیم که راستی همه همه یک چیز رو میگن فقط با واجه های گوناگون با عبارات و کراس های گوناگون و تنببندی های گوناگون اما با این همه برای که باز اینها رو به هم پیوند داده باشم یک گذری میکنم نخست میخوام بپردازم به آن چه که در واقع به صورت رسمی و از سوی به ویژه روز در ایران از سوی انجمن گرامی موبدان موبدان تهران یا ایران به عنوان اصول دین به اصطلاح گفته میشه و در نوشتخاب و کتاب ها و اینا میاد و من اونها رو اول تیتوار براتون میگم و بعد به کتایی گذری ازش میکنم و بعد یه نگاه دیگر گونه ای هم بهش میدازم آن خانشون بدم که اینا یکی هستند اون نخ بنپایه و یا نخ اصل دینم از دیاسی زرتشتی به این گونه بیان میشه یک باود به یکتایی خدا دو باور به پیامبری یا حالا پیامآوری اشور زرتشت سه باور به جهان مینوی و باور به بهشت مینو و آتششت مینو چهار باور به قانونمندی اشا در هر دو جهان. یا دو بخش از یک جهان این رو بعدا می پردازم ولی ما تنها یک جهان داریم ولی رویه های در این جهان هست یک روش آنچه که رسالا می بینیم اگر بخوایم بگیم رسال موزه مادی هست و بشه گیتی می و گیتری و یا بخشی که مینوح هست یا مینوی و مینوح هم از منه میاد منه هم از اندیشه میاد تا آنچه که در اندیشه میگذره و بر انسان برای اون که دیده نمیشه اگه بخواد خب میده 5 باور به گوهر آدمیت یا انسانیت شش باور به همشاست بندان هفت باور به نیکوکاری و دستگیری از نیازمندان 8 باور به دست بودن که بهتر بگیم سپنتایی بودن چهار آخشیج آب و باد و خاک آتش و رایت کامل بهداشت مایت زیست یا زیست بوم و سرانجام نه باور به فرش یا تازه کردن چهار که اگه بخوام یه خوردم برم توی اینها بدونین که بیشتر از این چون در این مورد ها بیشتر اینها ما گفته بود کردیم در پیش این ولی خیلی مهم هستن بویژه دو سه بخش نخست از این جهت که اینها رو اشتباه نگیریم وقتی ما میگوییم باور به کتابی تاائی که هستی بخشیست، بزرگ دانا و در همه جا نمایان هست شاید به گونه دیگه از جمله ما هم گفتم و میگم باور به یگانگی جهان هستی که اینها جدا نیستن هم. حال یک تایی خداوندی، آن اهورا مزدایی که ما در مزدیستی میشناسیم با جهان در جهان هست، جهان دروست با هم یگانه هستند اگر بخواهیم بگیم در همه جان نمایان است آن چیزی است که از قدیم با واجگان حالا تازی گفتن وحدت وجود به اون ما باور و باور داریم که از روز چنین میدید و چنین میگفت به هر روی آن یک تایی خداوند ما نباید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 اهورامزدا و جهان با هم هستیم، یک گانه هستیم، درون هم هستیم. ما درون مزدا هستیم، مزدا درون ماست. سپس باور به پیامبری آشوزرت داشت. در این مورد هم گفتگو کردیم، گفتگو خواهیم کرد، باز هم اینجا باید بگوییم که چه ما ایشون رو با هر فرنامی که بنامیم پیامبر بگی. پیام آور بگیم پیام دار بگیم حتی اونهایی که دوست دارند بگن فیلسوف یا از این واجه به کار ببرند آن پاسخ که از من میپرسند من همیشه میگویم می اشوزرتوش آن, آن چیزی است که شما میخوایید و شما باور دارید حالا در هر چیز دیگر در واقع این کانونمندی باور به طور کلی اینجوری است که شما به هر که باور داشته باشین جهان براتون تون همونجوری میشه ولی میخوام اینجوری بگم که در مورد عشوزرتوش هر کنی هم به ایشون نگاه کنین ایشون نمیتونه در جایگاهی باشه قرار بگیره که برخی از پیامبران در حریان دیگر بدون گونه شناخته میشند یعنی به شکلی که بدون درخواستخیش و بدون دانشخیش برگزیده باشه شده باشه و این برگزیدیشو شدن حتی در برخی موارد ممکنه پیش از زاده شدن پیامبران پیش بینی شده باشه و و و که چنین در مدارج وجودتش ما چنین نمیبینیم ما چنین نمیاندیشیم و در کاته‌هاشون هم چنین دیده نمیشه ایشون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 این در واقع اون شیوه نگاه کلی در بین ما هستی، دینی بهیست یعنی این انسان هست که در در پرسش و پژوهش و جستجوی خیش میرسد به مزادش پس وقتی که به آنجا رسید آنجا که به قول کاتا ووهومان یا در واقع نشه پر روشنیه فرا گرفت آننگام در دریافته می‌شوند آننگام مزدا پیوند پیدا می‌کند بر روی ما و ایشون چنین با مزدا در پیوند شد و چنین خود رو از سوی او را مزدا به عنوان آموزگار به عنوان پیام رسان به عنوان پیامبر دریافت و پیام مزدار و پیام خرد رو، پیام داد و دانش رو برای جهانیان آورد و برمهار بذاشت. سپس، اصل صرف که گفتیم ازش باوره به جهان مینوی. در گاته هنگامی که در یاسنای سی، هشوزرتشت در مقا آغاز می به گفتن پیامش ماموزشاش،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 و بنابراین یک گفتگوی اندیشه‌ای گفته گفتگوی ذهنی دیلگاه دیگاز نیست اینکه در این جهان نادیدنی اگر بخوایم اسمش رو بذاریم آری در جهانی که دستکم به چشمان به علاوه به عقله دیدنی نیست از همه نیروهای گوناگونی که پیرامون ما وجود داره گرفته که خیلی‌ها رو به چشم نمی‌بینیم فقط ممکنه آثارش رو ببینیم برای اینا همه میتونه به بخش مینو و مینوی مربوط بشه که در ادامش مسئله روان در واقع مطرح میشه و اینکه روان چیست باز بنابرا میتونه بگم که باور هرکس باور کسی روان یک یک گیگان جداگانه از یگانی که از پس از مرگ به جا میمونه و بعد به هستی و زندگی به گونه ادامه میده از نظر برخی شاید دوباره شکل مادی هستیگی هستی به خودش بگیره از نظر برخی هم که در واقع از نظر سنت زرتشتی جاودانگی روان هست یعنی روان به رختن در جهان مینوی و تکامل خودش ادامه داد تا به, تا به رسایی خودش برسه و به آور و یکانه بشه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 چون آزاده است و انتخاب می کند، بنابراین در برابر انتخابش مسئول و برابر قانون عشا هم پیام المال خوب دریافت خواهد داشت. بس پس اینکه که خب برابری همه انسان‌ها انسان ها از هر دیدگاه، از دیدگاه جنسی، نژادی اینا همه در, در درون مفهوم و در اون ماهی این نگاه به جهان و این دین باور وجود داره یعنی اگر ما اینو میدانیم، میبینیم، می بینیم حس میکنیم باور داریم که همه هستی با هم پیون دارم یگانه است و هستی هر کسی به هستی دیگری بسته است از, از گیاه گرفته تا جانور انسان و همه نمیتای هستی بنابراین در میان ما انسان ها هم نمیتونیم از دید آفری نشی از بر کسی یا کسان یا گروهی بر گروه دیگر برطری داشته باشه البته این جایی داره که به نظر من یک شایلی نشستی و جلسی رو به این مویجگی بدیم از این دیدگاه که خب گفتن این بسیار ساده است خیلی ها ممکنه چه از دید ایدئولوژیکی و چه از دید حالا خودشون بگن که بله همه انسان برابرند و یا زن و مرد برابرند و از حقوق برابر برخوردارند و و و و ولی خب شروبختانه میبینیم که در کمش و کردار خب چنین بسیاری چنین نمیشه چنین نمیتونن چرا چنین هست خب این رو از دیدگاه دانش و از دیدگاه روانشناسی و خیلی چیزایی دیمیشمش پرداخت ولی دست کم اینه که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 و گروه خود رو برتر از دیگران میدونند و در راهشان به هر صورتی میکوشند که اینو به ثبوت برسودند بگذاریم اخت ششون که باوره به امشاس ها که خب امشاس ها رو یا فروزه های مزدایی انسانی هست نامشو میذارم که رو ما بهش پرداختیم از همون سپنتا مینو یا فروزه آفرینندگی آغاز کردیم و تا و هومن و عشاو و شهریور و سپندار مزل و خورداد و امرداد و همچنین سروش رو هم در این قصه بندی گذاشتیم و ازش تعریفی و بازنمدی داشتیم. پس باوره به امشاست هفته باور به نیکوکاری و رسلی از نیازمندان آوردشته. اگه اتا خب این دیگه اینم درونشه. یعنی باز میکم هر انسان مسئولی، هر ذرتشتی، از بدینی که این،, این نگاهش به جهان هست خود به خود خود رو در برابر همه این نمودهای دیگر هستی هم به گونه ای مسئول میبیند و میخواهد که دیگران هم و دیگر نمونت ها هم از هستی خوبی برخوردار باشند، تا خودش بتونه از هستی خوبی برخوردار باشه چرا ما خوشبختی خود رو میخواهیم در خوشبختی دیگران بروییم؟ اگر خود ما جدایی از دیگران و بدانیم خب میریم فقط به قولن برور سر خود رو داریم واسم این داستان است مانند نمونه پیش این گفتم برای خیلی ممکنه این یک فقط یه شعار به نظر بیاد یه شعار باشه، یه آرنگ باشه، خب ولی هر از خودش رو در درجه بر نگاه میکنه به قول بعضی از خودیام ها هم میگم که اول تنی و سپس روانی البته این هم یک قدیدگاه باز میگم روان شناسان ها اگه بهش نگاه کنیم بسیار روی از این هاست، یعنی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 ما ناداری رو باید از بین ببریم، نادانی رو باید از بین ببریم اگر یک جایی نیازمندی هستیم که به ناداری هم کمک کنیم، اون مسئله دیگر ایست ولی بعد نادانی از بین بره، ناداری از بین بره از راه های پورا مکنم از همین روز که همیشه زرداشتیان از در طول تاریخ در هر جا که بودن و هستن برای نمونه آموزش و برورش برشون خیلی مهمه درستان و دویرستان رو اینها بناها کردن و می کنند. بهداش و رسیدگی به بیماری و بیماران خیلی مهم هست بیمارستان بناها می‌کنند و بناها کردند هر جا که بشه کمک کرد و این فقط در مورد انسان نیست باز می‌گن جانبران رو تیمار کردن بهشون رسیدن مانند هر جاندار دیگری بن آفعین شده کی روی باشون رفتار کردند. گیاهان و و و فناوری این نیکوکاری در, در بردارنده همه این بخش ها بشه. خب در همین پیوند باوره به ستانتوی بودن چهار آخشیج، بله آب و باد و آتش خاک. دیگه کیه که امروز ندونه که ما همه از اینها درو همه هستیداران از این چارتا به همون بدن هر شکلیش که حالا نگاه کنیم بلمایش همین بنابراین خب بیگمان آلوده کردن اینها خب آلوده کردن خود ما هم هست دیگه این کودکانه است که ما اگه نتونیم ببینیم که چگونه وقتی با ما زیستبوم آلوده می کنیم این دیریازود به خودمون باز نمی شور وقت میگم این هم باز میتونه یک آرنگ باشه یک شعار باشه در کنشت شکنه باشه ولی بسیار اصلا چنین نمیبینن اصلا توی دیرگاه ایدالوجیگیشون چنین چیزی نیست توی ها بینیشون چنین چیزی نیست و خب بیجمان اینجوری هم نگاه نمی و به اینجوری هم کنشمند نیست پس ما اینو را میبینیم طبعا میبینیم با دید بیرون و با دید درون اینو رو میبینیم میفهمین روزم که این همه سخن از تمام این دیگر هایی که در آوه هوای جهان به وجود اومده و نیاد و مساد دیگر که هممونم گواهش هستیم به گونه بخش بزرگش داره با همین آرودگی زیستون و و سرانجام نهم که باور به فرش کرد یا تازه شدن و تازه کردن جهان که این رو میگذارم و از ادمین گرامی خوشمندم اگر آمادگی دارند ما یک موزیک زیبایی مهمان بکنند تا ما دوباره بازگردیم آیا امکان وجود داره جونم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 باشد که روزی واره هم روزی قفس را بشکنم. زیبا, بسیار زیبا تا زرطشتی بگنونیم سپاس خوزارم از رو زرطشت می توی و ام خیاما یوی ایم فرشم کرناون اهو بیایم از کسانی شویم که این زندگانی را تازه بگنند یعنی چی؟ چگونه میشه زندگانی رو تازه کرد؟ نخواست به این باز می‌گردم که یکی از اصولی که گفتم در اصول جهان بینی ما هست و دیدگاه هستی شناسانه آن است که همه چیز در حال دگرگونی همیشه است اصل سپنتا مینو اصل جنبش اصل به گانگی در درون یگانگی یعنی که همه چیز در حال تغییرات همیشه گیست خب پس ما نمیتونیم ریش کس نمیتونه جبای تغییرات رو بگیره اصلا ایستادگی ایستایی یعنی در واقع پایان هستی پس پس باید رفت میتونم میگم چاره ای نیست برای ای که اشا چنین است خب حالا درون این برای این فقط اگه ما به دگرگونی نگاه کنیم دگرگونی و تغییرات میتونه هر راستایی داشته باشه هر جدی داشته باشه حتماً نباید به قول معروف به پیش بره حالا این داستانه به پیش و به پس رو به گونه ای مفهوم زمان درش میاد خب ما روش میذاریم به خاطری که ما با تغییرات همراهی ما حس میکنیم ما سن و سالمون میره بالا و و و زمان رو به گونه ای درونش میاریم حالا پرسش زمان پرسش است ولی تغییرات پس وجود داره حالا از سوی دیگر ما در عاشا میبینیم که در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 تازه در واقع زاده میشه. بنابراین این سیکل هستی این دایره وجود دایره هستی در هم دایره ایست و هم خطی. یعنی این که در کنار که پیش داره دایره ای هم هست سیکلی هم هست خب حالا انسان میاد در این میان ما گفتیم که باید با اشا هماهنگ باشیم اگر میخوایم که به درستی زندگی کنیم. من این تغییرات رو میفهمیم، تغییرات رو در میابیم و باش هماهنگ میشیم. ولی این هماهنگی در واقع برای ما فقط این نیست که باشیم. خب ما میخوایم که بتونیم انجام بدیم یعنی میخوام بگم که یک زرتشتی که برای پویایی، نوگرداری، پیشبرد، پیشرفت، تا تازه شده هم که این فرورهر که گفتم فرورهر نشانه پیشرفته است که در همه ما هست و اون چیزی نیرویی است که ما رو به تکاپو میندازه به من امید میده راه رو بهمون میخواد نشون بده پیش رو اون رو میخواد روشن کنه حالا اگه چرا نمیبینیم مسائل دیگری است ولی به هر حال به هر حال ما باید بتونیم پیش رو باشیم خب جهان رو کسانی تغییر میدند که خود پیش رو باشند حالا این پیش روی به این معنی نیست که بس همه با بدو بدو فکر کنیم که همه ما هر کدوم ما البته هر کس در زندگی خودش یک راهبر است، یک راهنماست. ولی هر کسی هم گفتم در جایگاه خودش ولی هر کسی در جا و جایگاه خودش میتونه در این پیشبرد پیشرفت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 شما از انسان نگاه کنید که حالا میگیم از باهارنشینی رسیدیم و برای خودمون در خانه های آنچنانی زندگی میکنیم و حالا بگذاریم که در این آفاتمان ها نشستیم و از زمین آرمیتیمون جدا شدیم و هی دورتر دورتر شدیم خب این مساهده اگه بگذاریمش کنار ولی به هر روح یک نوع پیشرفت ما کردیم دست کم از دیدگاه ابزاری از این کار فرنال یا تکنیکی حالا این کردیگاه اندیشه پیشرفت کردیم یا نه این رو دیگه همه میدونیم که وقتان پسرفت کردیم وقتی ما نگاه میکنیم از جمله انسانی که در از پیش تو زندگی کرد چندیشه ای داشت و خیلی ها امروز چنددیشه ای دارن پس می که در این جهان اندیشه این, این به گونه است. بخوایم بگییم تا جهان مای. خب ما دانشمون بسیار افسون شده هرچند که این دانش رو هم از اون زمان هم میدارستن که این بهوانگی در درونه یگانگی و این یگانگی وجود داره حالا ما از راه شکافتن اطوم رو ندونم و اینها می‌خوام مخواهیم بهش خب، در حال این هم یه جور پیشرفت هستش بنابراین این, این تازه گردانی به همه اینها مربوط بشه تازه گردانی سیر داره سیر به سوری بهتر شدن داره و اینکه انسان به طور کلی با امید زندگی است امیدی به اینکه به هر روی یک یک چیز دیگری به دست بیاره و این چیز حتما مادی نیست و حتما برای خودشم نباید باشه میتونه یک چیز جایی تو بیانوزه میتونه یک ترین به وجود بیاره که ما همه ننده هر کس، هر کسی به شیوه خودش یکی در درسش یکی در کارش یکی یک کتاب می نویسه یکی یکی نوآوری میکنه اختراعی میکنه یک سومندی می, یک می نوه یکی میره برق رو درست میکنه یکی میره ماشین رو درست میکنه و اینا همه مظاهر گوناگون نموت های گوناگونه فرش کرد و نوآوری هستن من میتونم بگم که برای این که انسان بتونه در زندگی خودش حالا چه شخصی و اجتماعیش اگه به مسئله نو و تازه شدن نگاه کنیم ما در چهار جهت در چهار راستا و در چهار به سرسطح گوناگون زندگی میتونیم این نو آوری رو و نوگرایی رو باهاش همراه باشیم و ببینیم. یکی در بخش تنی ما هست، فیزیکیمون. خب می با خوراک های سودمند، با ورزش، با آسایش و اینها تن خود رو به هر روز تا زمانی که طبیعت جازم میده ده و توانایی نو بیشتر کنیم من نظر فیزیکی در اندازه های خودمون. سپس در بخش روانی است روان رو با اندیشه با اندیشهری، با ژخ با موسیقی با هنر به طور گدی با کس کسایی که دارم در خدمت به دیگران به همچنین با نزدیک بودن و یگانه بودن با، زیستبوم با و طبیعت همه ها به تازه نگه داشتن ما از نظر روانی و خود نوگردانیمون کمک کنیم پس ما تنیر داشتیم و روانی و سوم قوم اندیشهی در بخش اندیشه من. یعنی فکر منو اندیشه منو نیرو رسانی کنیم با خواندن، با نوشتن با یاد گرفتن با آموزش دیدن، آموزش دادن، اینا همه تمریناتی هستند برای بخش اندیشهی ما. و سپس در بخش حازمانی، در بخش اجتماعی و در بخش همفهمی با باز با دیگر انسان ها و دیگر نموت های هستی. در پیونت های گروهی اجتماعی، کار اجتماعی، کارهای سودمدنی که به صورت گروهی انجام بودیم بلی جملگی گروهی که به هر کدوممون هممون کمابیش داریم هیچ کسی تنها نمیتونه و آنگوارم کسی ایچ وقتی کشکرز تنها نباشه ولی به هر روی این گروه هایی که باشه چه گروه های کچکتر و چه گروه های بازگتر این هم به گونه‌ای در اون نوع گردانی ما همیشه کار دارن پس بنابراین خودمون رو اینجوری در زندگی در واقع نیرومنتر میکنیم تا بر چالش های گنابون زندگی در واقع پیروز بشیم و به سمت پیش بریم خب این هم به ای در مورد تازه گردانی و وقتی از پراقه گفته بود کردیم من یه بخشی رو هم نادیده ناتمام گذاشتم و به قربحر به گونه دیگه نگاه می به صورت بخشای گناه و گناه نسان باز هم از این چه به اون به قربحر چون از اصول ما صحبت کردیم و من گفتم که هر کسی به گونه این اون که نشون بده و اون نه پس رو گفتم و این که همه چی در اون جا ما همون رو گرامی می داریم. به شیوه دیگری هم که من نگاهش می‌کنم میتونم به این صورت براتون دیدگاه هم اه هم اه هم زیباست هم است و هم که در همه جا میشه این رو دید میتونم اینجوری بگم که بنیان پیدایش جهان و هستی رو اگه بخواییم بگیم یا این که همه چی اینجوری کار میخورم همه چی درشون یک یگانگی هست یا همون یکتایی از اول یک یکتایی اصلا دو, دو دو تایی دوگانگی دوگاهانگی درون یگانگی که گفتن این دوگانگی یعنی جنبش یعنی دگرگونی پس اینکه این که همه که یگانه است درون این یگانگی جنبش وجود داره دگرگونی همچگی وجود داره سوم همه اینا بر اساس یک قانون مندی هست سامان و هنجاری هست که اون اشعا باشه که گفته بود کردیم و چهارم در, در این سامان خرد وجود داره دانش وجود داره منش نیک وجود داره یه همون روحوم منعی خوده همین چهار رو اگه نگاه کنیم که بعد البته پیامد اینا که گفتم هشتراب و در واقع سپندار، میتی و عروتات و امرتات، خود و اینا پیامت ها اینا هستن ما هر چیزی تو جهان نگاه کنیم اگر بخواد درست به قول معروف عمل بکنه و درست با جهان ما سازگار باشه این تا باید درش باشه.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 پس این چهارتا قانون، مهر، جنبش و خرد رو نمیشه هستن جدا کرد. قانون و دادی که درون ماش مهر نباشه به درب نمیخوره اون شهریاری که بر خرد استوار نباشه باز خوب نیست اون سامان و هنجاری که درش جنبش نباشه به سازندگی و آبادانی نمی انجاره.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 آزادی اندیشه و گزینش در انسان پس در دین بهی انسان آزاد است انسان آزاده است که خودش باید بزیند. این اختیار است نه دین جبر زور خب چون آزاده است پاسخگو است خشکار است برای ما خود خدای پرسش پرسش‌کجی است چه برسه ما انسان‌ها بنابراین باید بتونیم پاسخگو باشیم وقت این خود ما هستیم که نجات دهنده و رهایی بخش خودمون و جهان هستیم و باید باشیم مسئولیت به ما بر میگرده نه میره تو آسمون ها نه میره به آینده دوری که معلوم چگونه و کی قرار بیاد اینا همش به خودمون بر پس مسئولیت خودمون رو امروز باید بپذیریم و آنچه که امروز میکنیم به آمدش رو فردا هم ما خواهیم دید همچه هم. تقدیر و سرنوشت جایی نداره. اختیار است انتخاب است ما سرنوشت رو میسازیم ما تقدیر رو میسازیم تقدیر ما رو نمی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 گفتیم در نیکتر بودن اندیشه و گفتار و کرد برابره زن و مرد خب اینو بارها بارها گفتیم و باید بگیم و باید بهش عمل کنیم نه تنها بگیم زن و مرد حقوق برابر دار. همه انسان ها حقوق برابر دارن و باید از امکانات برابر برخوردار بشن حالا اگر نظر جسمانی و فیزیکی با هم فعر اون داستان دیگری است که اونم البته مال همه نیست بسیاری از مردان هستم که از دیده تنی فیزیکی بسیار ناتوانتر از بسیاری بانوان هستند. حسرا به این پایدار. پس بانوان اینا سوبر برابر برقرارند. در جامعه زرتشتی جامعه خشترا است. خشترا و ایریو سامانه خاستشده شده خوب یا گزینشی خوب. پس هم سازمان باید باشد، هم گذینش باید شده باشه رسمی مردم و هم نیک به معنای اینکه برای جامعه باید سازنده باشد و نیک باشد. سازمان اجتماعی زرتشتی سازمانی است که بر مبنایی توی نیاشای از جمله سودوشواش هم می‌بینیم که از خانواده آغاز میشه. از کوی و برزن میگذره به شهر میگذره به کشور میگذره و جهان و این جهان باید از راه مهر و خرد با هم یه باره بشه و دوستی ما به دنبال جنگ نیستیم اصلا برای چی جنگ؟ دشمنی برای چی؟ اگر هستند کسانی که ما رو پشمن میبینند مشکل اوناست که البته مشکل ما هم میشه ولی خب ما در برابر نادانی باید بیستیم در برابر خش باید بیستیم اون چاره نیست برابر اندیشای احریمانی باید اصداد خب این هم جزمه خیشگاری ماست آم، کار کوشش ما به دنبال کار کوشش بهسازانه و مفید باید باشه تنبری بیاری گدایی درویشی ریاضت اینها هیچ وقت چیزای شایسته ای نبوده در جامعه ذد شد و هر کسی بار به دنبال کار و کوشش مفید باشه تا خودشو بسازه به بسازه خلاادش بسازه به به جهان رو بسازه. و پاکنگه داشتن زیستبون که ازش گفتیم آخش همه گیتی و زیستبون ما آیا درست نگرش داریم؟ پاک نگرش داریم؟ تا خودمون هم درست و پاک بمانیم. و حالا آتش رو هم اگر به گونه ای ما به این بی به اینکه آتش رو ما چه نگاهی بشتاریم خب اون هم سخن جلابانه است. آتش نماد اون همون چهار فروزه که بتون گفتن یعنی نه، یگانگی، جمعش، ولی گرگونه. آتش نیروی درون چیز هاست حنجار و قانون مندی خرد و یا به بیان دیگر اینا آتش نهفته در هستی هست آتش هم از زندگانی نشان داره هم از خردی که نگاهبان زندگی هست آتش همه رو گرد گرد خودش میاره به هم پیوند میده به جمدهش میدازه نور آتش هم که بهترین نماد روشنایی درون هست و گرما و روشنی هم که ازش میاد به هر حال زندگی رو به پیش میبره و این دیگه همه میدونیم آتش به گونه ای نقش پرچم و درفش رو برای ما بهنینان داره با تمام این مفاهیمی که برای تو خب مفاقی میکنم دیگه آن چی که از اصول بود به گونه ای به زبان‌های گوناگون گفتیم ولی باست هم همیشه جای سخن داره جای اندیشه داره و به گونه های گناگون هم درمالش سخن گفته خواهد شد خب دوستان پیش از این که به بخش پرسش ها سخت بپردازیم، پردازین هم چون نیم ساعت دیگه گذشت خواهش مندم که اگر میشه یک سروده دیگری هم ما رو مهمان کنید من میکرو یا گویانه رو رها میکنم تا بتونیم یک نزیگ دیگری بشنویم و دوباره خدمت رو برمیگرم سرود پاکی و نیکی به گوش یار بخان سرود پاکی و نیکی به گوش یار بخان و در بلوغ خرد یادی از عوستا کن بیا و, بیا بیا و. زند بخان, بخان. بخان. تا سپیده و بیا و زند, زند بخوان تا سپیده سپید بازد پوشت شکوه جله خورشید را تماشا کن بگو بگو که نیک بیندی شد نیکن گفتا چون نیک شد همه کردار شکر مزدا کو بیا بیش به عشق نیا خواه که سرفراز کهن پیام پاک شرف را بهینه معنا کن بگو که ملت ما سرفراز تاریخ است. و دشمنان وطن را خفیف و رسد پیان از و شرف را به خانز و رمز و راز شرف نامه را ویدا کن نبسته دست تو را فتنهای چرخ بلند مقام خیش در اوجه پماس پیدا کن نبست دست تو را فتنهای چرخ بلند مقام خیش در روی همان پیدا کن بیاو این خطه خدایی را برای جشن خرم پیشگان محید. از خون سیاوش بر زهاج بیا به حرمت دل حل این معما کن تو قطره منم قطره و وطن دریا بیا قطره جان را نساق دریا کن به شوق دیدن فردای و و آزادی به نور دانش امروز فکر فردا کو امید می چه که از ابر ها بیا امید می که از ابر ها بیا و بوست امید و می چه که می بیا با و استانه و بتن و بوستان دوباره بطن. دوباره احیا با دوباره امیدوارم که اکنون دیگه صدای من بیاد خب خوش اومدید دوستان به بخش پرسش پاسخ می‌رسیم و گفتم که تلاش می‌کنیم تا بتونیم به این پرسشان به گونه‌ای پاسخ بدیم که همه خوشنود باشند پرسش نخست بدین گونه نوشته شده که شنیدم که دو درصد انسانها سالم و هیجده درصد انسانها مریض و هشتاد درصد انسانها نرمال هستند و در آثار آمده است که ظرفیت و گنجایش انسانها در دینداری و دانشورزی متفاوت و متغیر هست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 از بخش دومش آغاز کنم که خب بسیار زیبا ما هم همین داره میخواهیم ما هم میخواهیم داد بر بیداد پیروز بشه و همینجا که شما گفتید حالا با واجگان فارسی اگه نوشتیم بهتر بود بسیار زیبا خب ما هم همین داره چرا که دانش بر بیدانشی و بیدان نادانی نهر بر نفرت و دشمنی و همه اینها می‌گه بشه و این با ما هستونم و اینکه خداوند هر کس رو به اندازه توان خودش مکلف و مسئول می‌کنه خب آری دیدگاه من که خداشناسی هر کسی چطور باشه ولی بجمان هر کسی به اندازه توانای خودش میتونه باشه خب ما هم همیشه اینو تکرار می‌کنم بشی باه گونه گونه که هر کسی در اندازه های خودش و در جایگاه خودش یعنی اونجا که هست در اندازه‌ای که میتونه. هر کسی هم بخواد بیشتر از اندازه های خودش بقول خود قول رو وزن بلند کنه خب نمیتونه زیبش میمونه و هم خودش رو از بین میبره و هم کار مثبتی انجام نداده. اینه که هر کسی هم در اندازه های خودش و این که آیا 80% انسان ها نرمال هستند حالا شاید از دیدگاهش دیگه شما گفتید ولی یادم نیادش که یکی از این مثلا روانشناسان ایرانی حالا نام نمیبرین یک بار در این شهر ما بودند و سخنرانی داشتند و ایشون وارون این شما میفرموندن که 80 درصد انسانها نرمال نیستند 20 درصد انسان نرمال هستند حالت منظورشون در دیدگاه این بود که مثلا روان درستی کامل اگه بخوام بگم. و در جهانی که به هر حال فشارها زیاد مسائل زیاد و تنشها ها و و و اینه که تاثیرات زیادی رو همه انسان ها میذاره ولی به هر بله هر کس در اندازه خودش هر کس یک گامی در هر روز بتونه یک کار نیک بگه و ما رو قریم ما یک کار نیک بکنه یک گام پیش بر داره خب همه اینا رو هم جنگرید جمع جنگ کنین رت رت در دریا شد دوستداری یعری پرسیدند نظر من را در مورد رمز و راز یا تاثیر اعدادی همچون سه هفت یا نه را جویا بشم از دیدگاه جهان بینی ذد از دیدگاه جهان بینی ضرد داشتید من عدداد با هم هیچ فرقی ندارم حالا اینکه یعنی وقتی شما میپرسید از دیدگاه جهان بینی یعنی آنکه حالا در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 من آگاه نیستم. یعنی اگر هم وای داشته باشم در اینجا جای اون نیست که در اون مورد ها سخانگاه چونتی جهان بینی زن تشتی بیرون میره و پیوندی با هم ندارن من. دوست دیگری پرسیدند آیا فراشو یا به ای که کسانی تعریف می همان رستاخیز می باشد یا نوکردن کردن جهان هستی؟ گویند به گونه ای بالای سخن گفتین ببینید من اینجوری نگاه میکنم به هر روز نه تنها من باز برمیگردم به اشو و باته ها که در اونجا سخنی از پایان جهان به مانای یک پی یک رویداد ویژه یا یک پدیده ویژه‌ای نیست و همونجور که از سوشيالانس ها یا سودجسانان به کلی همگانی گفتگوها است و هر کسی که بتونه گام درست و موثری در جهت بهبود وضع هستیداران برداره خب یک سوشیال اس یا سودسان به شمار میاد همین جور هم محکوم به فرشوکرتی محکوم همیشه است و این محکوم آخر جهانی نداره در دیدگاه‌های پس از از ژرطوش در بخش‌هایی از کتب قدیمی خب آریخ سخن از این چیزها رفته از رستاخیز و اینها حتی در های خودمون هم این ممکنه برخی از به سرا دانایان دینی اگه اسمشو بذارین خب بدین گونه هم سخن بگن رستاخیز رو هم به عنوان نوشدن پایان جهان بگوونه ای سخن بگن در از دین کرد و هوستا هم این ها آمده که من به اونا نمیپردازم گفتم من نگاهم نگاه هم نگاه و اون رو اصول اصل و اصول و بعد اگر همطور که میدانیم و، یاد گرفتیم و باور داریم نگاهش بکنیم و دیدگاه دانشی هم نگاه کنیم و اینکه فرشگرد همیشه گیست و اینکه در قانون مندی اشا و هستی وجود داره که هر دگر دگرگونی های به قول آقایون گفتن دگرگونی های کمی بر از این مدتی کیفی میشه یعنی اینکه آروم آروم وقتی یکی تغییر میکنه بعد یک بار یه چیز جدید ازش اخفیده میشه خب این جهان ما اگر به زمین نگاه کنیم به زمینی خاکی داری زندگی می کنیم اتفاقی براش ممکنه بیافتد این هم هم چیزها درمانش گفتن چی کمی... کم... میگن یک سیاره دیگه از این ستاره های دنبال دار بیاد و بخور زندگی همه ما به گونه ای تموم شه یا نه میدون ها سال دیگه همینجوری زندگی به پیش بریم شک های گوناگونی آا انسان باز به چه شک و چه گونه در میاد خب ما که نیستیم تا اون مریم ببینیم یا اگر باوری باشه که دوباره به شکل دیگری یا یه جاییی از این هستی سر در میاریم شاید بتونیم گواهه اون هم باشیم ولی نجانم رستاخیز به اون معنایی که حالا مرده ها زنده میشن و میستند و فران میشه و بهمان میشه دست کم من چنین نگاهی ندارم و اش رو زرد داشتم چنین نگاهی داشت. پرسش بعدی میخواستم بپرسم که که در هنگام سرایش, سرایش یسنا روبروی موبد زود قرار می‌گیرد چیست؟ و هر یک چه مفهوم می‌دوند البته، هاون که احتمالاً برای گرفتن اصاره‌ی هوم هست ولی آن دو پایه با سر حلق‌مانا که می‌ده‌ی دیگری از نیان‌ها رد شده‌ها نمی‌دوند چیست؟ بازگرد تو زیده‌ی خب برای کسانی که اینا دیدن کسانی که ندیدن خب نمی‌دانند شما چه سخن می‌گید ولی این سراعش یسنا, یسنا ی یشتن به روی یه بخشی از سلطه های است، بخشی از آین های است که نوبت میخواند نوبت اصلی میخواند و آری اون چیزهایی که روی اون به سلا سفره پیش رویشون هست خب حعابت جای خود داره ها که شما میفرمایید برسم یا برسم هست یعنی آن چیزی که این برسم ها امروز به صورت نیده های میشه گفتش که فلزی هست باریک فلزی ولی قدیما هست چوب بوده چوب درخت های ریجه ایماننده ها که های گزه اجتباه نکنند که بهش میگفتن برسم بعد این پایهی که به سواه این برسم ها روش میزنن بهش میگن محروب چون شبیه حلقه گرده ماه هست که این برسوم ما رو میزهد. برسوم به طور کلی در آینه های بدران ما نشان و نماد به هم پیوستگی بود و اینکه این, این شاختخار کنار هم بذارند و به هم پیوند بدند و این پیوند وصلا اجتماعی یا پیوند دینی رو میرسود. واژه ری، ریلیژن که از کنایه رلیجی و اتیننیاد این هم به من های به کونه برصبح بستنی پیون دهی، انسان ها در یک باور و یک دین. این از اونجا خب، نزد این سامنگرگرامی پرسشا ها تموم شد، و ببینیم که دوست دیگر ما یا پرسشی یا دوستان دارند که تنها میبینم که حال اگه اشتباه نکنم بانوی گرامی به نام نوشین هستند اگه اشتباه نکنم در میان شنوندگان که در مورد زن و مرد به گونه این گفتن یا یعنی اینکه که ایشون به حال، درست فهمیدن پشاریم که درست فهمیدن و این که احتمالا یکمیشو ما در مورد زن و مرد وقتی گفت بکنم میکردیم که نظر توانایی <تصفيق> یک سانگیستم یا من گفتم هستن که وقتا وارون اونم هست برها امدواری میشون از اون بانوان نیرومند ایرانی باشند که بتونن مردان نوطان مثل بنده رو هم به حال کمک کنند که به گونه ایمان بتونیم زندگی درستی داشته باشیم سپاسگذرم از شما و همه شیرزنان ایرانی ببینم که دیگه ظاهران پرسش دیگری خب نیامده و اگر هم دیگر پرسشی نیست، خب، ما هم دیگران یک ساعت و تقریبا 20 دقیقه هست که دارین گفته بود کنین. سفاس کزارم از که تا این هنگام دیرهنگام بر رو با من بودید، در کلاس بودید و اونها که از راه راژیو شنیدن و یا خواهد شنید. به Judi میگم به همتون و شب خوب و خوش روزهای خوب و خوش براتون آرزو دارم اجازه بدیم ببینم که تازه دیگری آمد. پرسشی که فرستاده شده بدین گونه است ست پوش شده باشد کافی است آیا نوبت کلاهداران را در این شرایط جا میکنند این پرسش این که از دوستان بهترین ما استفاس بذارم آکه خب پرسش از که گرفتن بر روی اه... من پرسش رو درست البته مدویدی نشدم که آیا سهده توشنن کافیه خب گواهگیران که البته ما میکنیم برای هم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 سپاسم از آیز گرامی که همواره در حال منو همه ما من نخرم خب دوستان پس دیگه از قرار دیگه چیزی نیست، بنابراین من دیگه شب خوش بتون میگم و به حول خداوند خداوندجان و خرت میسپارم و میگم که تا یک مزدا است به جهان اندر مزدا به جهان اندر است خوب خوش باشید بدرود تا درود دیگر شب